داستان هفتم اون طور ها هم نیست. عثمان بیک پای سفره نشست و گفت: امشب اصلا اشتها ندارم. زنش پرسید: سوپ هم نمیخوری؟ سوپ میخورم، بریسه. زنش دو ملاقه سوپ توی کاسه ریخت. عثمان بیک همانطور که داشت سوپش را میخورد گفت: فردا با دوستان میریم گردش. دخترش پرسید چه گردشی بابا با دوستان میریم حوزه انتخابیه زنش پرسید باز هم این چندمین دفعه است عثمان بیک گفت سوپ خیلی خوشمزه شده یکم دیگه بریز زنش دو ملاقه دیگر سوپ توی کاسه ریخت عثمان بیک گفت امشب اصلا اشتها ندارم دو تیکه برشته توی سوپ ترید کرد. بیات زود به زود به مردم سر بزنیم. پسرش گفت: برای چی؟ عثمان بیک عصبانی شد. این چه سوالیه؟ خب معلومه برای گوش دادن به درد دل مردم غذا دیگه چی داریم؟ زنش در دیسه بزرگی را که وسط سفره بود برداشت و گفت: مرغ و سیب زمینی. عثمان بیک گفت: امشب اصلا اشتها ندارم. اما عیبی نداره. یکم کم واسم بذار. از رونش زنش بشقاب آسمان بیک را پر کرد از آبشم بریز خوشمزه میشه پولو پختی؟ بله خوبه توی بشقابم سالات بزار. ترشی نداریم؟ چرا؟ خب بیارین دیگه شاید ترشی یکم اشتهمو باز کنه زنش به خدمتکار گفت ترشی بیاورد آسمان بیک گفت خوبه که آدم زود به زود به درد دل مردم گوش کنه دخترش گفت پارسال هم گوش کرده بودین زنش گفت پارسال نبود پیرارسال بود عثمان بیک گفت یکم از زمینیش بذار این ترشی هم عشب خوشمزه است و سالاد ترپچه مگه بده از اونم ورمیدارم توربچه غذا رو حل میکنه امشب نمیدونم چرا اصلا اشتراها ندارم. زنش پرسید. کرفس میخوری یا گاله کلم؟ عثمان بیک گفت. والا نمیدونم که. اول از این کرفس بذار ببینیم. زنش گفت. کرفس خوبیه. عثمان بیک با چنگال مقداری از کرفس توی باشقابش برداشت و گفت. واقعا هم کرفس خوبیه. شانس ما رو ببین. امشب اصلا اشتها ندونم پسرش پرسید کی را میفتید؟ عثمان بیک گفت منو صبح زود بیدار کنیم اگه خواب بمونم زود بیدارم کنیم کرافز خیلی خوشمزه است دیگه از این بزا ببینم زنش بشقاب عثمان بیک را پر کرد عثمان بیک گفت پیاس چه داریم؟ اشتها رو واز میکنه زنش گفت توی سالات هستیگه فردا صبح زود را میفتیم سر زدم به مردم گل کلم چه میدونم دونم ی خوردم اصلا اشتها ندارم به زور می خورم ساعت چند بیدارت کنم ساعت هشت بیدارم کن ساعت نه اخونه می رم بیرون به دارم میخورم. اصلا اشتها ندارم امشب یه خورده سیر بیارم اشتها رو باز میکنه خوب میشه گوش دادم به درد دل مردم همیشه خوبه گله کرم چقدر خوشمزه شدم یه خورده دیگه بذار ببینم بعدش نمیتونی پلو بخوری میتونم. میتونم قرار را بیافتیم من سردر نمیارم بابا چکی سر در نمیاری سر به مردم بله درسته اما یه خورده پلو بکش ببینم میتونم بخورم روش نخودم بریزم بله که بریز زور دارم میخورم خورم شاید با نخود بتونم بخورم آب مرغ هم بریزم بریز چه خوشمزه شده یادتون نره صبح زود بیدارم کنین نمیدونم چه شده به کلشت همو از دست دادم تو همیشه همینجوری سهل انگاری میکنی خب برو پیشه دکتر تو حالت خوشه خانم دکتر مگه چیکار میکنه خب اشتها آور میده پروش واقعا عالی شده معرکه است یه کم دیگه بریزم چه میدونم والا؟ آره یکم دیگه بریز. شاید تونستم به زور بخورم. همیشه باید به درد دل مردم گوش داد. البته. آدم وقتی اشتها نداره دلش هیچی نمیخواد. ماست نداریم؟ یه خورده ماست بریزی روی این پلو. کی برمیگردین بابا؟ از کجا؟ از گوش دادن به درد دل مردم؟ یا دابا... دو سه روزی طول می کشه نمیدونم چم شده اصلا اشتها برام نمونده از بس یه جا میشینی. هیچ حرکت نمی کنی. فردا خوب می ارتباط با مردم خیلی فایده داره یکم دیگه پولو بریز روش ماست هم بریز فردا صبح زود بیدارم کنین اگه خواب بمونم همیت گوش دادن به حرف های مردم نون خامهای ای میخوری؟ ولو چه میدونم؟ اصلا میل ندارم حالا دوتا تا تو باشقابم ببینیم شاید تونستم به زور بخورم خامه اضافه هم روش بریز با چی میرید بابا؟ با ماشین ارتباط با مردم نون خامهایش حرف نداره مم. تو دهن آدم آب میشه راست میگی؟ اصلا معلوم نشد خوردم یا نه؟ دو تا دیگه بده. شیرینیش کمه؟ نه. خیلی عالیه. اما بدشانسی امشب من اصلا نشده ندارم. از پای سفره بلند شدند. عثمان بیک مئدهش را با دست فشار داد و گفت نفخ کرده. زنش گفت همیشه بعد از غذا این طوری میشی. فکر میکنی علتش چیه؟ اسمان بیک گلوی محکمی زد و گفت والا چه میدونم؟ چیزی هم که نخوردم قهوه بادشو میگیره؟ قبل از قهوه سیب بده سیب واسه نفخ بهتره شما باید سبک خورد اما نه اینقدر سبک میگن سیب خوبه سیب قرمز یه دونه دیگه بده ببینم من معتقدم ارتباط با مردم گوش دادن به درد دل مردم همیشه گفتم فایده های زیادی داره چون که مردم باد گلو میزنند پاش پاشو قهوه درست کن شاید افاقه بکنه نکنه میدم خالیه واسه همین اینجوری میشه خب عزیزم یه چیزی بخور دیگه خانوم خب موقعی که اشتها ندارم چه بخورم هم یه چیزی میگی ها؟ باید شربت اشتها آور بگیری راست میگی؟ حالا بذار این مسافرت رو برم و برگردم اون موقع باقی... همانطور که عثمان بیک قهوهش را میخورد از بیرون صدای شربت فروش آمد زنش گفت شربت واسد خوبه بله به حضم کمک میکنه اما اگه نخوچی نباشه مزه نمیده شربت فروش نخچی هم داره اصلا میلم نمیکشه حالا توی این پارچ شربت بریزین شاید یکی دو لیوان خوردم پیش خدمت دوید دمه در با یک پارچه بزرگ پر از شربت و یک پاکت نخچی برگشت آسمان بیک یک لیوان پر شربت خورد و شروع کرد به خوردن نخچی های توی مشتش بعد گفت نمیفهمم چم شده؟ اصلا دلم شربت نمیخواد زنش گفت یه لیوان دیگه بریزم حالا بریز ببینیم چی میشه آخه میگن شربت برای شیکم خالی خوب نیست چوبشور داری میخوای؟ بیار دیگه بعد از شربت خوبه عثمان بیک یک لیوان دیگر شربت خورد نخوچی ها رو هم تمام کرد گفت وای دارم میسوزم انگار چیز شور و شیرین با هم خورده باشم. دل و رودم می سوزه. یک لیوان آب خورد. باده گلو زد. گفت. وای. یه خورده شیرمه معده بیارین. حالا بده. زنش شیشه ی معده را رساند اسپان بیک دو قاشق شیر معده خورد و بعد آرق بلندی زد. گفت. ببین. تاثیر داشت. اگه بخوای واسه شربت خاکشیر درست میکنم آره خاکشیر خوبه صبح زود میدارم کنین اگه خواب بمونم ارتباط با مردم فایده های زیادی داره چون که درد دل مردم مشنیدن شنیدن فرد صبح زود را میافتم بهتر دیگه بخوابم با شکم خالیم اگه خوابت میبره دیگه عادت کردم شب دلت ضعف میره یه می خورده بیسکویت بذارم رو سرت؟ بزار دیگه شاید خوردم اما بیسکویت خالی هم نمیشه خورد یه کم شکلات لیموناد بزار ببینیم اصلا میل ندارم اما عثمان بیک به اتاق خوابش رفت پیش از رفتن به خواب، بیسکویت ها و شکلات های توی بشخاب را خورد همین که رفت توی رخت خواب، لیموناد را هم خورد تا سرش را روی بالش گذاشت خوابش با زنش صبح روز بعد عثمان بیگ را از خواب بیدار کرد عثمان بیگ چمدان سفریش را برداشت و راه افتاد قرار بود با دوستانش در یک قنادی جمع شوند و از آنجا با ماشین حرکت کنند در اولین شهر سر راهشان به با اتاق بازرگانی رفتند قرار بود این سه نفر که با اتومبیل آمده بودند به درد دل تاجرهای شهر گوش بدهند عثمان بیگ دفتر یادداشتش را باز کرد خودنویسش را به دست گرفت و گفت: بفرمایید آقایان، سر پا گوشیم. همونطور که می‌دانید، به اینجا آمدیم تا با شما در تماس باشیم و به درد دلتان گوش بدهیم. یکی از تاجرها گفت: از اینکه برای در تماس بودن با ما زحمت کشیده اید و تا اینجا آمده اید از طرف خودم و دوستانم تشکر می‌کنم. اما ما هیچ مشکل و ناراحتی نداریم که بخواهیم درد دل کنیم. آسمان بیک به دو دوستش نگاه کرد. دو دوستش هم به آثمان بیک نگاه کردند. آثمان بیک گفت خب این که بله. یعنی من همین جوری گفتم درد دل. وگرنه ما هم میدونیم که شماها هیچ مشکل ناراحتی ندارین. اما هرچی باشه بالاخره یه نارهتی کوچیکی چیزی دارین حتما. یکی دیگر از تاجرها گفت خیلی خواهش دارم. شما رو اصلا درک نمی کنیم. نکنه میخوایین از زیر زبون ما حرف بکشین یکی دیگرشان گفت آدرس و اشتباه بهتون دادن حضرت آقا خدا رو شکر ما هیچ شکایتی نارضایتی نداریم اثمان بک که حیرت کرده بود گفت بله البته من هم برای این نپرسیدم که فکر میکردم ناراحتی و شکایت دارین به طرف دو دوستش برگشت و ادامه داد مگه نه آقایون؟ ما برای این نپرسیدیم که فکر میکردیم شماها نارضایتی و شکایت دارین مگه نه؟ دوتاییشان گفتند؟ بله بله عثمان بیک گفت گفتیم شاید یه کم و کسری باشه، یه درخواستی، چیزی داشته باشیم خدا رو شکر همه چیز خوبه، همه یه کارا رو به راهه همونطور که میخواییم تجارت میکنیم، هرقدر بخوایم وام میگیریم عثمان بیک آهسته گفت اون طور ها هم نیست بله درسته اما اون طور ها هم نیست و حتی ما هم کم و کسری داریم تاجر ادامه داد ارز به اندازه کافی داریم هر چقدر دلمون بخواد صادرات میکنیم هیچ وقت نشده بود اینقدر سود ببریم عثمان بیک گفت والا چه میدونم درست میفرمایین اما اون طور ها هم نیست اثمان بیک و دو دوستش به گرد همایی دیگری رفتند اقشار کم درآمد در این گرده همایی شرکت داشتند. آسمان بیک گفت: «هم گرامی ما امروز اینجا آمدهیم تا به درد دل شما به شکایت های شما گوش بدهیم. زنی از جایش پرید و گفت: «یعنی چی کدوم درد کدوم شکایت؟ شما چی داری میگین؟ عثمان بیک حیرت زده گفت: «یعنی شما اصلا ناراحتی و شکایت ندارید؟ مردی گفت، نه، خدا رو شک وضع هممون خوبه، کار همون درآمدمون عالیه. چه میدونم والا، حتی ماها... نه آقا وضع هممون خوبه، آیندمون تأمینه، خدا رو شکر. اون طور ها هم نیست، یعنی چیزه، یعنی درست میگین اما اون هم نیست. آسمن بیک و دو دوستش به یک سندی ها اسمان بیک در برابر جمع کارگران گفت هموطنان حرفتان را میتوانید راحت به ما بگویید ما اینجا آمدیم تا به درد دلتان هایتان گوش بدهیم یکی از کارگران پرسید مثلا چی یعنی مثلا کمی دستمزد زیادی ساعت کار وضعیت بهداشت آقای محترم خیلی خواهش دارم خدا رو شکر همه چیز عالیه دیگه چی بخوایم؟ مثلا من خودم مایی سیصد لیره توی بانک پس انداز میکنم. نه بابا، یعنی هیچ ناراحتی ندارین؟ نه که نداریم. اون طورها هم نیست جان من. آثمان بیک و دو دوستش با ماشین به یکی از دهات رفتند. دهاتی ها توی میدان جمع شده بودند. آثمان بیک گفت هموطنان عزیز روستایی، می دانید ما برای چه به اینجا آمده آمده ایم تا به درد دل شما گوش بدهیم. پیرمردی دهاتی فریاد زد. درد؟ چه دردی؟ یعنی مثلا چه می‌دونم دونم کوچیکی مثل نبودن راه خوب، آب لوله کشی، خوبه، همش آسفالته، لوله کشی هم داریم. نه جان من اونطورها هم نیست، مزه ها،, باغ ها. محصولمون خوبه میکاریم و برداشت میکنیم وام هم میدن اما چون احتیاج نداریم نمیگیریم اون طور هم نیست زن عثمان بیک آمد توی اتاق یالا پاشو دیگه یالا دیرت شده سر عثمان بیک از روی بالش پایین افتاده بود و خورناس میکشید زنش تکانش داد عثمان بیک یک دفعه از خواب پرید و گفت اون طور هم نیست یعنی چی اون طور هم نیست؟ ساعت داره ده میشه. آسمن بیک موقع لباس پوشیدن گفت. اه دیرم شد. دوستان هم منتظرم هستند. باید میرفتیم با مردم در تماس باشیم.